از داری در و زنان مؤمن و مؤمن با و یاد الله واحی سلسلال صحبت را قصد می کنن و از الله توفیق توفیقه گفتن حق را می که برزبانن جد آنچه را که حق و الله را رازی می کنن چیز دیگه, دیگه باطل ماشه و الله را و ما به خودش تمام می برد و درونی جسمی همه ما سید الاولین و آخرین محمد المصطفی صلی الله عليه و آله و یاران و روش اهل در ال آنچه که الله زارجلال به این امت احسان کرد یکی از منتهای عظیمی که الله سارجلال بر این امت گذاشته و او را در قرآن مجینم الله یاد کرده این مهنت را که پیانبر اسیار مهربان و رسول کاملی معلم کاملی به همراه کتاب کامل که قرآن مزین باشه بر او مفی معامده ا اصلا را گحلف کردن و همین موت را الله جوجرال در قرآن زعاق را یا به اینکن؟ آیا در نظر شما تقوت کردن خیلی سریع به م فادلا بپ از چرا مانی در چند باشه و این مطلب ناقص ای که خداوند مننت گذاشت بودارش بر برمهمینا می نه می نبودی و تواضعی ما نبود لطف او نبود تیم می شد علاوه دوچرخه برمهمینه گذاشت قبل ما را وجود آورد و مننت گذاشت ما مسلمان این جا خداوند بیگذشته نتایج ادیم میشود میکنم. لحاظ من نظاوه علی بومینی به تدریج خداوند میندازد کوش بر ما من. کدام مند؟ الله تعالی بهش با خوزی میله. این بعدا پیم رسولت من آن کسی. و مینده اصلی اینه. الله میگه ما درختیم. مبوسک کردم، انتخاب کردم، به از میان خداوانها رسولم یک پیامبری بود خب پیامبر از تحریر دو در عرب انتخاب شده محل سمونه پیامبر محل بلادت پیامبر شهر مکه مکهی کنه شداره در نزیر دو در عرب میان عرب پس خداوانی ما من خداوند پیامبری برای اینها انتخاب کردم از جنس خودشان از آسمان برای اینها کسی نفر جزیر دوم و من, من کسی براشون نکرد آدم بلکه از کن خودشون از پیان خودشان از پرزندان خودشان خداوند برم قلب انسقه وقتی که خداوند یا هفتانی که خداوند منبول کرد کرد برای ایناها از پیان برمید خب این پیان برم رو خداوند منبولور کرد خداوند چیور؟ بلای چه خداوند این پیان رو منبولور کرد میان اینها؟ چهار نفتر خداوند نیاز تذکر بگید، او شدید چهار نفتر را در البته هستان آیاتی دیگر خداوند چیمان دیگه هم عنوان داشته اما جاملتری و کاملتریش در این نفتر ازبه ازبیر مشکل و لفن انفتر یک جو علیه آیاتی اولین نفتران خداوند این پرشید که حلب از بهزت این پیانبری احکام خداونده دستورات الهی اینجا خداوند به همین اشاره میبرماید که من خداوندیم میاندار برای اینا ها از میان خودشان انتخاب کردن اول اینکه در تلاوت بکنه احکام من رو برشون یکیو علیه ایم آیاتی و یو زکیه اونا رو ترگیه بکنه تحضیب بکنه من حالا به جوزیات اینها هم تا جایی که وقت اشاره اجازه ده اشاره بکنم تلاوت آیات قرآن مجید کتاب کتاب قرآن نبی پیامبران به شما آمد کتابی که با پیامبران شما آمده. آمده اسمش چیه خواست. قرآن بله بو قرآن مجید در لوح محفوظ قرآن اسمش این کتابی که پیامبر با خودش آورد مُنزّل پیامبران این قرآن پس اولین مأموریت این پیامبر که آیات قرآن رو برای قومه حالا شاید یکی میگه که تلاوت لفظش میکنن اشکال نداره همین تلاوت لفظ قرآن خالی از لفظ میکن. همین تلاوت لفظ شاید بعضی بگن ما عربی که نمیفهمیم باید یک مفسری باشه یک تفسیری باشه که قرآن باشه اون درسته دقیقاً باید نمیشه باشه انسان قرآن رو کنید کنه بفهم قرآن چی میگه یعنی خود چه داره هم نمیداره. حالا تناوید دفتشم به دلائی مشغول بشه خالی از عجب نیست خالی از هدایت خیلی مثالی زنبان شما درست در زمان پیامبر و در زمان قبلت و قرصینا و قرصینا و قرصینا و قرصینا هدایت شد به وسیله قرآن هدایت شد به وسیر تناوید لحظه قرآن هدایت شد درسته اون می فهمید که وقتی که خوهرش و دامانش قرآن رو می خواندن تا زبان الله عربی دیگه قرآن به زبان عربی خود اونها هم عرب بودن وقتی قرآن را تلاوت می‌کردند حضرت عمر به وسیله همین شمیدن حالت قرآن مدی نوعی در دلش ظاهر شد پس به صرف تلاوت قرآن هم انسان جایزه اش کی برای و چی ماده واقعه بذاری میشه و قطعاً همینطور در بسیاری از کتب آمده که بسیاری از اشخاص به به دینه یه همین آراد به شما ایماریت حضرت پس اولی محوله که بیامد صلاوت آیاته و یو سکیه اوناها رو از اون رفتارهایی هایی که قبلا داشتن رفتارهای ناسواب نادرست رفتارهای های بیانبر اینا رو بکنه تسکیه بکنه اینا رو کماخ بکنه اگر رفتار جاهلانه زنده به گول کردن دختران در میانشان شاید بود به بزیده کلاوات آیات شما و تزدیه بیانبر اینها ها ازش فاصله بگیرند و کماخر جاهلانه دیگر, دیگر نمیشنگ رو رسالد از شرام فوری گرفته از قطر نفس گرفته از قمار گرفته از و جمیع رضای اطلاقه پس بروی مهمولیت پیانبر اینه که اینا رو پاک بکنه، تر و تمنیز کنه و همه این در و شدن که ها که مصاحبت و شد خداوند اونا رو بر کرد شدن از قدس و یاران رسول و که خداوند بشارت داد از سابقون الاولون ملت ما. یه انسان ها اهل عرب بود تزدیه اهل که پیانبر وقتی که ابتدا دعوت رو شروع کرد نه نمازی فرد بود نه حضی فرد نه دکاری فرد بود, دکار دکار دکار بود. اینا همه عربان ها بردن آمدن پیانبر اول اف... از همه بر بستر دلها زحمت کشید وقتی که دلها آماده گرد این اینجا و این جان دیل شده بود. یک کشابت وقتی بخواد یک زمینی رو به کاره اول که نمیره بعد ببین باشه آفه دیگه رو به اول باید زمین رو شکل بگنید زمین بستر زمین برای بعد پاشیدن باشیدن باید باشه وقتی زمین شکل مخورد تو دقیق بعد داخلش میباشن آفش اضافه میکنن کود بهش میدن مراقبت میشه تا برای تبدیلیه مفتولیش ده رو همینجوریه به رو بایستی اول بسازه خداوند اینجا به پیویش دست میده پیار اول تو دلهاش قرار می همین دلهایی که به سبب کارهای بد تنگ شده بود سخت شده بودی دلها اما دل دیه مهربانان ظالم زحمات شبانه روزی دعاهای متضرران گریه های طولانی خداوند همین دلها رو نرم کرد همین های به به گلی گریه به و اندکس صحبت رسول صلی علیه و آله مثل باران بارانزدائی شروع به گریه میکردم بله پس خدا حالیم اول تعلیم آیات من رو بکن اونها رو آیات من در شروع بکن دو تذیعه شروع بکن واسه نه باید دو حضر کتاب احکام من رو برای اونها چکار بکن بازگو بکن که اگر شدید کاری بکنید و چنان کاری که من شده و ممکنه از که از اجتراف شده یعنی همون بعض امر به معروف را نیزمان کرد و یعنی به معروفی که نا و حکمت آخرین نکته رو خداوند فرماد حکمت بشید و بیاموز حکمت رو مفصلی بیان کردن سنت و شدید الله علیه و باورسن خب همه ما میدانیم خداوند بسیاری از احکامش رو در قرآن مجید به صورت اجمالی بیان کرده خداوند فقط در مول عقب سلام نماز رو برما بکنید دیگه خداوند نگفته چجوری رکوب بکنید چجوری سجده بینید چجوری خیام بکنید قرده بشینید اما تفضیلش رو بیاورد اگران شاصل رو کرده احادیث پیامبر رفتان پیامبر گفتان پیامبر شارع و دوزیدنده احماد رو باید پس اینجا که بیفرماد باییو علی مهمال کتاب تحریمه عواصم الهی که سراغ ده در قرآن آمده ولا حکمت یعنی انتباع شریعت بیامرد سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله این شما نمودید عظیم و بزرگ رو خداوند بر عهده پیامبر گذاشت و خداوند فرمایید همینا من حملو لتی درالیم و شماها کسانی بودید که قبل از اینکه این مراحل بر شما بیاد شما این چنین ترو تمیز بشید شما از جماعتی بودید که در بحرانی موعظه و ارشاد داخله شما بحران بودید همه برای شما از حوالات مردم عرب و زمان اعتراض دارید دیگه شما ماشینی نیست از کتاب‌ها شما خونید چه وضعی در مدیریت الحکم ولی در میانشان شان شده بود ولی خداوند متعال چون اراده خیر داشت و خداوند خواست اونها رو متحول بکنه این منت بزرگ و عظیم رو بر سر اونها نازل کرد و چنین پیامبر مهربانی رو براشون به عنوان هدیه فرستاد این پیامبر در چنین زمانی که الان ماه ربیع خود کلمه رو میدارید یعنی چی؟ روی یعنی بهار، بهار همین کلمه بحاری که با شما فلقه بردن از دنستان پس پس به بحار یعنی زمانی که این زمین برای خودش یک وضعیت بسیار زیبا و شادا تر و تمید دارایشون درور و بحجر برای نصارگران برای خودش کار بیدار انتخاف بیدارن حالت از بحاری بحاری بحاری بحاری بحاری هر سفزی زمین همین پر از رنگ و گلو نمیدونم کلان و کلانی پلان که در پهل بحار من این از اجانب خداونده این هم که این, این ما ماه ربیه یعنی بهار برای انسانیت که این بیاندر عزیزی رو خداوند در این ماه در ایمان فلسطان رو متوجه شده حالا به حال حال هست که اهل جنت دارن در توانده هم و هر تشهیو دادن دارن برای هیفته در ولی در همین ما در همین ما از جلوتر مخدم مخدم کاری بایی در همین ما چنین پیانبر نازنینی رو از را رو سلا ما شما کرستان و این پیانبر رو اگر ما نشیناتی و از تعالیمش ما استفاده نکنیم مبلی دار در توان رفت جز در پهی میگه با میگه شدیده نکن به راه سعادت نخیار بکنی جز راه رسولات دیگه راهیت رو به سعادت برسانه کلا و هاشر نگه نیست اگر ما برای بر راه سعادت رو طیبو بکنیم به سعادت دنیا و آخرت نرسیم جز در مخیر برس برسولات سلام گام زدن امخان حسنون سعادت بجود نداره ولی این پیانبر از همه چیز بیشتر دوست بداریم از زن و فرزند و مال و جا و مقام هر چی که هست اولین توسی توسی با خدامنده و درجه دوم توسی توسی با پیانبره آیا جامعه امروز ما جامعه اسلامی ما امروز این حالت رو داره آیا محبتش با پیانبر در سرد آری و در حد کماله اون چیزی که ما می‌بینیم؟ متاسفانه متفاوت برادر عزیزم اون چیزی که الان مشاهده کنیم خیلی فرق میکنه با اون واقعیتی که بایستی باشید این پیامبر مهربان این پیامبر عزیزی که از همه استراحتش در تمام سختی ها رو تحمل کرد برای هدایت mennesه برای هدایت بشر و برای هدایت این دنیا و دنیای بعدی که <مید> خداوند میفرماید و ما ارسل الا رحمتن للآلمی خداوند نمو دنیا خداوند میفرماید ما تو را فرستادی رحمتی برای هر جهان هم جهان دنیا و هم جهان آخرت این پیان برون از ما آشنافی کده ایگر زندگیمون مطابق زندگی من با زندگی پیانبره این روز که متضبانه ما باز زندگی پیانبر از مسیحه درست ما را به این آبوزه ها آباده این ما را را رسونده این پیانبره بینه ما رو ما فردندان ما زنان ما کانماده ما چرا شنافت دارن زنان ما چرا زندگی زنان پیانبر کانماده دختران دفتران رو را بلدن بیشناسن آدم سره ای که سال و شال بیا زمانه روید بیاد ما از این پیامبر بگیم حالا ده دنگه یه رو کنیم ساله یه منبر بگذاریم داخل تاقشه و فرنسیان فراموشی بهت و تا سال دیگر نه را این حقش این اصلا حق مدرب از این و این پیامبر روز ایامت برای من رو شفاحت نمی کنه این رو بدان پیامبر کسی شفاحت می که اون من رفید من چون پاکنه پیامبر نسبت ظاهری و باطنی داشته باشه اکثرش صورتش از هر سر گرفته تا کف ما که رسم مطابق و دین دیگه باشه نه اینکه در ادعا کسی ما رو نرسونه و ما از فلک گوش فلک برنج از ادعاهای ما ولی در میدان عمل میشه لنگ می‌زنه ناجیزه ما اون چیزی که نزد خدا محصله میشه عمله گفتاری که ما بگیم حالا ما دوست داریم دوست داری محبت فلان یکی از نشانهای محبت با پیانبر صلی اللہ علیه اینه که همیشه انسان دروب به رضاستان نشه باشه دروب باشه. خارجه خارجه به رضاستان نشه باشه حالا که این به نهردی و به امولیه کسی آمد پیشیه بزرگی گفت من بخواه خواب به رسول الله گوش بدین گفت من دوست دارم پیانبر صلی اللہ علیه را به خواه ببینم چرای پیانبر اگر صلی اللہ علیه بفرماهد هر کسی من را بخواه او بلانه که با همه را بدا چرا که شیطان نمیتواند خودش را مثل شکل من در بیار خب پیش بزرگی آمد گفت من خیلی پیانبر دوست دارم میخوام این پیانبر را به قاق ببینم این بزرگ هم چکار کرد کرد. گوش شما شب و روز روزانه یا شبانه دوز شما شما مثلا شبان روزی هزار بار دو هزار بار ورد زبانت درود بر پیانبر اکرم باشه صلی الله علیه وسلم خب راه نمیش ها یه نکته دیگه هم گفت گفت از پروت و براه هم چی؟ اجناناشو هیچی نه با شکنه برسته شما این درود درد زبانه باشه خیل بسه دید که نه بابا گروزنگی شکم و میده و چهار و به که این نگرد از کناس مثل اللباکی رو بگرد قرار که شب هم که میشه به جایی که بیانده رو رو ساخرینه صبح رنگینه کباب درانه درانه کلان بخواب میشه میگه که بعد باست چند روز رو خدا به میدانه میگه که دید که حاصل نشد آمد میشه این بزرگ و کار دیگه بکنیم برعک شد محبت خواهر قصا میبینیم خوراق و فلان و فلان این بزرگ برگش بود گفت اونقدری که فکر کرد، محبت خوراق در دلیت بود محبت رسولات و در دلیت بود چربید این یکی بر دیگری و همون این چربید ندیجه هم همون بگیدی اگر محبت پیامبر، علاوه به پیانبر بر چیزهای دیگه بر تو مسئولیتشون چطوریه؟ تریده به تعلیه صادق‌تر که قابلیت اون رو برای سنام رو همون حالا واقعا الان آدم با دیگه اینا مثلا خودش ما چه حاضره زندگی هامون با زندگی بیوادر هروان؟ سر داره آور های داره من خودم دیگه حالا کسی ما من اینو رو چه زندگی من؟ زندگی زندگی اجتماعی، زندگی انفرادی من. مناسبت داره فقط به سر ادعا و گفتان که ما دوشداری این شدید به من باید بیدر و ممیده هم همینه اگر میخوان دگرگمی در احوالات ما دگرگمی در سندگی ما خیر و برکت چقدر آسانا نازل بشه این رو هم خدا تحریفش رو گرده در قرآن این نظام و ملائکته یوشلان نمی خدا و ملائکه برای پیامبر رحمت رو می پرستن. <اللدنعان> و درود شونی فرستاده است یا ای ال کهان امر شلو علیه سلام تسلیما شما بیایید همراه خدا و ملائکه بشید تا خداوند رحمت رحمتاشو بر سر شما نازل بکنه و خود پیامبر اکرم آخرین نکته این فرمان هر کسی بعداً یک جلوه بزرگه است یک اون بزرگه از جانب خداوند ده رحمت ها. و برکت در عضو یده نازل میشه حالا که میدان عمله ما در میدان اهل ثابت نیم محبت وان را با این که آمده از ایشود